عزیزان به یکی دیگر از درسهای جالب مطالعه کتاب مقدس خوش اومدیم. یادتونه که بنی اسرائیل چطور در مصر در بردگی بودن؟ حالا اونها در حال ورود به سرزمین وعده هستند. به همون ترتیب، اون ما که از بردگی گناه نجات پیدا کردیم، دیگر برده نیستیم. با این حال، لازمه که وعده های روحانی رو که خدا به ما داده فتو تصرف کنیم و غالب بشیم این شما و این معلممون این بار در دنباله بررسی عهد قدیم به اولین کتاب از کتاب‌های تاریخی می‌رسیم کتاب یوشه کتاب یوشه به لحاظی برخلاف کتاب اعداد هست کتاب اعداد مثال بزرگی از بی‌ایمانی بود کتاب اعداد به ما می گفت که این قوم یهودی به خاطر بی‌ایمانیشون وارد سرزمین برکت وعده خدا نشدند کتاب اعداد از ناباوری در زندگی یک ایماندار و از عواقب وحشتناک ناشی از آن به صورت تمثیلی با ما صحبت کرد اون قوم در کتاب اعداد اونقدر ایمان داشتند که از مصر نجات یافتند اما اونقدر ایمان نداشتند که وارد سرزمین وعده برکات خدا بشن اون تصویر بسیاری از کسانی که امروز اظهار میکنند مسیحی هستند و اونقدر ایمان داشتند که از گناهانشون از مصر روحانیشون نجات پیدا کنند اما آنچنان ایمانی ندارند که اونها رو به کنار رود اردن بیاره تا وارد سرزمین کنعان بشن جایی که برکات خداوند بر اونها خواهد بود چون که اگر ایمان داشته باشند و اون رو بطلبند هر چیزی که خدا براشون مهیا کرده دریافت خواهند کرد زمینه کاربردی پیغام کتاب یوشع این هست. دارایی‌های روحانی خودتون رو تصرف کنید نویسنده کتاب یوشه هست البته یوشه دستیار یا جانشین مرد بزرگ خدا موسی هست موسی در تربیت یک جانشین موفق بود و این یکی از دلایلی که چرا قوم چنان پیروزی تحت رهبری یوشه داشتند. موسی با آموزش یوشه کار فوق‌العاده‌ای انجام داد و با تعلیم او میشه گفت که موسایی دیگر ساخت این رویه در سرتاسر کتاب مقدس به چشم میخوره. ایلیا الیشه رو آموزش داد. ارمیا دستیارانش یارانش رو از دیگرم بیا انتخاب کرد. وقتی که به عهد جدید میرسیم میبینیم که عیسی با تعلیم دوازده شاگرد برای خودش جانشین آماده میکنه. پولس رسول تیموتاوس رو تعلیم میده. ما این رو از پیدایش تا مکاشفه میتونیم در کتاب مقدس ببینیم. وقتی به این ترتیب عمل نمیشه، عواقب باز هم وحشتناک هستند. اما در همین ابتدای کتاب‌های تاریخی این کار صورت میگیره. وقتی که ما گذر از کتاب‌های شریعت به کتاب‌های تاریخی رو می‌بینیم، در همین موقع انتقال رهبری از موسی به یوشع رو می‌بینیم. نام یوشع در زبان یونانی مانند نام عیسی تلفظ میشه. در زبان یونانی عیسی یهوشوا تلفظ میشه و در زبان ابری یشوا تلفظ میشه. همه ما احتمالاً میدونیم که معنی عیسی یعنی ناجی یا یهوه نجات میبخشد هست و این معنی اسم یوشه هست پس این رهبر بزرگ با نامش تصویری از مسیح به ما ارائه میده همینطور به لحاظ خدمتش تصویری از مسیح به ما میده و من ایمان دارم موسی به عنوان بزرگترین ناجی تصویری از مسیح به عنوان ناجی بزرگ هست اما یوشه تصویری از مسیح به عنوان خداوندی هست که نه تنها به عنوان ناجی ما رو نجات میده بلکه ما رو به سرزمین وعده برکات روحانی هدایت میکنه. به نظر میرسه که کلمه کلیدی در تجربه نجات و رهایی ما از مصر روحانیمون کلمه ایمان هست. کلمه کلیدی برای ورود به سرزمین وعده برکات روحانی هم کلمه اطاعت هست. به لحاظی وقتی ما داریم از اطاعت صحبت میکنیم در واقع از ایمان صحبت میکنیم. علامه ایمان یعنی تعهد نوعی از تعهد که اطاعت میکنه یوشه در زمان خروج چهل ساله بود یادتون هست که یوشه و کالیب تنها بازماندگان سرگردانی در بیابان بودند چون که اونها وقتی به سرزمین کنعان برای جاسوسی رفتن گزارشی مطلوب آوردند خدا ایمان اونها رو به عنوان چیزی که ارزش بقای اونها رو داشت ملاحظه کرد به همون اندازه که خدا ایمان ابراهیم رو ملاحظه کرد اما یوشع وقتی معمور شد قوم رو برای ورود به کنعان و غلبه بر هفت قومی که قویتر از اسرائیل بودند رهبری کنه 80 ساله بود. یوشا وقتی مرد 110 ساله بود و شخصیتی قدرتمند، وفادار، رهبر و نابغه نظامی از خود به نمایش گذاشت. و نمایانتر از همه اینها ایمان عظیم او بود. او مانند موسا در بوته مشتعل مأموریت نیافت و مأموریتش را مستقیما از خود خدا دریافت نکرد. او معموریتش رو از مردی پیر گرفت که خدا رو و یوشه رو میشناخت. البته اون مرد پیر موسا بود ما وقتی به رهبری یوشع می رسیم یک انتقال رو می بینیم که خیلی مهم هست موسا کلام خدا رو بر بالای کوه سینا مستقیما از خدا دریافت کرد همونطور که معموریتش رو در بوته مشتعل مستقیما از خود خدا دریافت کرده بود اما حالا گفته شده که به یوشه نصیحت شده که در کلام مکتوب خدا تعمل کنه کلامی که قبلا توسط خدا به موسا داده شده بود مثل پادشاهان اسرائیل که بعد از او می آمدن یوشه هم مقرر بود که در کلام خدا شبان روز تعمل کنه یادتونه که موسا در تصنیه 20 مقرر کرد که پادشاهان باید این کار رو بکنند این از پادشاهان شروع نشد بلکه از یوشع شروع شد همین که قرار شد یوشع رهبر بشه به او گفته شد که باید از این فرامین خدا اطاعت کنه. او باید فرامین مکتوب خدا رو یاد می گرفت و شبان روز در اونها تفکر و تأمل میکرد. همونطور که گفتیم، پیغام کاربردی کتاب یوشع اینه: های روحانی خود رو تصرف کنید. قبل از اینکه خدا سرزمین کنعان را به قوم اسرائیل بده، او وعده‌اش رو به اجداد اونها ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده بود. سند مالکیت و یا مالکیت سرزمین کنعان بیچون چرا بود؟ خدا بدون هیچ قید و شرطی اون سرزمین رو به اونها داد. اما غلبه و تصرف اون سرزمین کاملا مشروط بود. همونطور که تاکید کردم کاربرد حقیقی کتاب یوشه تصویری از برکات روحانی ما به عنوان ایماندارانه. وقتی که ما به مسیح ایمان میاریم همه یه برکات روحانی رو که ما نیاز داریم به ما میده. مالکیت ما بر اون برکات روحانی قید و شرط هست اما تصرف اون برکات روحانی و به کارگیری عملی اون برکات روحانی کاملا مشروط است. این تصویری برای ما در آیه کلیدی کتاب یوشه هست یوشه باب یک آیه سه آیه تعیین کننده در کل کتاب یوشه هست همه کتاب کتاب مقدس آیه تعین کننده یا بابی تعین کننده دارند که به نوعی مفهوم واقعی اون کتاب رو برای ما باز می‌کنه. این کلید یا آیه تعیین کننده ی کتاب یوشه هست. درست زمانی که اونها آماده از رود اردن عبور کنند و به سرزمین کنعان حمله کنند، این چیزی که بهشون گفته شده. هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما داده ام، چنان که به موسی گفتهام میبینید تمام سرزمین به اونها داده شده و به لحاظ مالکیت اونها مالک تمام اون سرزمین هستند. اما نه به لحاظ تصرف. قانون تصرف این بود که هر وجب از سرزمین کنعان که پای شما در اون قرار بگیره اون جایی که من به شما دادم فقط همین نه بیشتر و نه کمتر کاربردش اینه که در برکات روحانی ما هم همینطور عمل میکنه. ما برکات روحانی زیادی داریم مثل دعا، خود کتاب مقدس، دوستی، پرستش، لذت بردن از خدمت و در خدمت اهداف خدا بودن تا کار عظیمش رو در بین قومش انجام بده برکات روحانی زیادی هستند که در اختیار ما هستن خدا این برکات روحانی رو به همه ایمانداران داده اما بعضی از ایمانداران اون برکات روحانی رو تصرف میکنند و بعضی نمیکنن. این کلید خیلی عملی هست. شما باید بر اونها قدم بذارید. شما با دعا کردن برکت دعا رو تصرف میکنید. وقتی پرستش میکنید، پرستش رو تصرف میکنید. وقتی کلام خدا رو میخونید، اون رو به دست میارید. اون رو درک میکنید و میپذیرید شما برکات روحانی و دارایی روحانیتون رو قدم به قدم تصرف می کنید. بسیاری بر این که محتوای کتاب یوشه خیلی با پنج کتاب اول کتاب مقدس مربوط هست و کتاب یوشه باید با اون پنج کتاب اول کتاب مقدس مطالعه بشه. پنج کتاب اول کتاب مقدس اسفار پنجگانه نامیده شدن چون که اینها پنج کتاب شریعت هستند. اما خیلی ها عقیده کتاب‌های شریعت این همه به مسئله تصرف سرزمین وعده اشاره میکنه و کتاب یوشه اونها رو به سرزمین وعده میبره پس محتویات این کتاب متعلق به اسفار پنجگانه یا تورات هست. این تمثیلی از نجات رو به این روش زیبا بیان میکنه در کتاب پیدایش شما بذرها و یا منابع نجات رو میبینید در کتاب خروج شما رهایی از مجازات و قدرت گناه رو به وسیله خون بره فسح و کار معجزاس آسای خدا میبینید کتاب لاویان بلافاصله منظور از اون نوع نجات رو به تصویر میکشه که همون پرستش خدایی هست که شما رو نجات داده یا رها کرده کتاب تسنیه پر از نصایح هست. به ما نصیحت میکنه که از رود اردن عبور کنیم و وارد سرزمین موعود بشیم وقتی وارد سرزمین وعده شدید باید تمام دارایی‌های روحانیتون رو تصرف کنید تمامی برکات روحانی که خدا براتون تدارک دیده تجربه کنید البته کتاب اعداد اون مثال منفی وحشتناک از این واقعیت بود که تمام نسل قوم خدا نتوانستند وارد سرزمین وعده بشن و از این رو ما مرگ یک نسل رو به خاطر بی‌ایمانیشون می‌بینیم اما یوشه برخلاف افراد قومش در کتاب اعداد هست کتاب اعداد مثال بزرگی از بی‌ایمانی هست. در حالی که کتاب یوشه مثال بسیار بزرگی از ایمان است کتاب یوشه میگه با ایمان شما میتونید تمام های روحانیتون رو تصرف کنید وقتی بر کاربرد حقیقی تاکید میکنیم آیات زیادی در کتاب مقدس در عهد جدید میبینیم که من فکر میکنم به طور کاربردی تصویر زیبایی از مفهوم کتاب یوشه در عهد قدیم رو به ما ارائه میده کتاب یوشع در مورد سرزمین کنعان با ما صحبت میکنه. سرزمین موعود بسیاری از محققین بر این اقیدند که کتاب افسوسیان در عهد جدید به لحاظ کاربردی معادل کتاب یوشه در عهد قدیم هست. کتاب افسوسیان با ما در مورد برکات روحانی که در مسیح داریم صحبت میکنه. اون به ما میگه که برای ما این امکان هست که وارد سرزمین مسیح بشیم و تمامی اون برکات روحانی رو تصرف کنیم. در عهد جدید شما غالبا تعالیم رو میبینید و در عهد قدیم شما مثالها ها رو میبینید. خدا اول به ما مثال ها رو میده، بعد نسقه اصلی رو به ما میده. مثل توضیحاتی که زیر یک عکس چاپ شده. وقتی کتاب یوشه رو میخونید، شما راجع به این میخونید. با ایمان میتونید همه اون رو به دست بیارید. شما میتونید وارد سرزمین وعده برکات خدا بشید و هر چیزی رو که خدا براتون تدارک دیده به عنوان یک ایماندار تجربه کنید. وقتی به کتاب افسوسیان میرسید، اون به طور برای شما معنی میکنه برای مثال آیه کلیدی کتاب افسوسیان هم آیه سوم باب یک هست. خیلی راحته که این دو ارجاع کتاب مقدس رو به خاطر بسپارید. یوشه یک سه آیه کلیدی یوشه هست و افسوسیان یکسه آیه کلیدی افسوسیان هست. افسوسیان یک سه میگه متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی مبارک ساخته است. این آیه هرتنگیز از کتاب مقدسه. اون چیزهای متعددی به ما میگه اولا سرزمین وعده رو به این ترتیب به تصویر میکشه در عهد جدید سرزمین وعده جایهای آسمانی هست وقتی عیسی تمام شب رو با نیقودیموس سر برد او با نیقودیموس در مورد تولد تازه صحبت کرد. نیقدیموس نمیتونست او رو درک کنه. عیسی به نظر میرسید که راهنمایی مختصری به این عالم یهودی میکنه چون او نمیتونست به روش معمول و آمیانه زمینی اون مثال رو بفهمه نیقودیموس فقط میتونه سینو بگه چطور؟ چطور چون این چیزی امکان داره؟ از این رو در جای عیسی به او گفت اگر راجع به چیزهای واقعی روحانی مثل این با تو صحبت کنم چه خواهی کرد؟ که هیچ کس به با آسمان بالا نرفته است مگر آن که از آسمان فرود آمد یعنی پسر انسان که در آسمان هست ایسا درست داشت به چشمهای نیقودیموس نگاه میکرد وقتی گفت من در آسمان هستم وقتی اینو گفت داشت مستقیما به چشمای او نگاه میکرد و نیقودیموس حتی نتونست بگه چطور چیزی که ایسا در موردش صحبت میکرد البته این بود آسمان یک جا هست او در صحبت های بالاخانه به ما میگه که اون یک جا هست آشکارا آسمان یک جا هست اما آسمان فقط یک جا نیست بلکه جایی که بعد از اینکه بمیریم به اونجا خواهیم رفت اگر دعوت او رو بپذیریم و او رو پیروی کنیم، تمام ابدیت رو با عیسی خواهیم بود. آسمان بودی روحانی داره که ما همین الان هم میتونیم در اون ساکن بشیم. این همون چیزیه که منظور پولس در افسوسیان یک سه هست. وقتی که میگه متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است. اما شما باید بیایید و اونها رو دریافت کنید. شما میدونید اونها کجا هستند؟ در کتاب یوشه اونها در سرزمین موعود هستند. شما باید وارد سرزمین موعود بشید و اونها را تصرف کنید. در کتاب افسوسیان اونها در مسیح هستند. اونها در جای آسمانی در مسیح هستند. اگر شما می این دارایی روحانی رو در افسوسیان یک سه تصرف کنید باید به مسیح بیایید. به جای آسمانی بیایید. چون که همه این دارایی ها اونجا هستند. با ایمان شما میتونید در مسیح زندگی کنید و همین الان اینجا میتونید در ابعاد آسمانی زندگی کنید. آیا شما به کاربرد روحانی و واقعی آیات کلیدی یوشه و افسوسیان باور میکنید؟ آیا باور میکنید که براتون این امکان هست که وارد سرزمین موعود بشی؟ چیزی که عیسی در یوحنا دهده به اون فراوانی حیات میگه و من از صمیم قلب امیدوارم که شما به این آیات ایمان داشته باشید. پس با ایمان شما رو به چالش میکشم که وارد تمام برکات روحانی در مسیح بشید و تمام داراییهای روحانیتون رو تصرف کنید. آیات کلیدی یوشه و افسوسیان به ما این خبر خوش رو میده که فیض و حقیقت وارد این جهان شده و میتونه با ایمان وارد زندگی من و شما بشه. پطرس رسول هم در این آیات از سرزمین موعود و زندگی در جایهای آسمانی در مسیح حرف میزنه. قدرت الهی او هر را برای حیات و دینداری نیاز داریم بر ما ارزانی داشته است از این طریق شناخت او میسر شده که ما را به واسطه جلال و نیکویی خیش فرا خونده است این آیه حیرت انگیزی پتروس که حتی نمیتونست بخونه یا بنویسه با این حال تاکید او بر شناخت خدا بود پتروس همیشه از شناخت خدا صحبت میکنه او پیرمردیه که فقط خدا رو میشناسه او یک دانشمن نیست گفته میشه که وقتی پولس و لوقا با هم بودن پتروس کناره میگرفت چون که او مثل اونها دانشمند نبود. اما پتروس یک قول روحانی بود. خدا رو میشه شناخت او در این آیه که در دوم پتروس یک سه هست به ما میگه. ظاهرا همه این آیات در باب یک و آیه سه هستند که قدرت الهی خدا به ما داده شده. توجه کنید؟ این یک حقیقته. او قبلا همه چیزهایی رو که برای حیات و دینداری نیاز داریم به ما داده یعنی همه چیزهایی که ما نیاز داریم تا خداشناسانانه زندگی کنیم خدا پیشاپیش پیش اونها رو از طریق کسی به ما داده که توسط او به جلال و نیکویی فراخوانده شدیم. شدی دوباره همون حقیقت به ما یاد میده که خدا هر چیزی رو که ما برای زندگی خدا پسندانه نیاز داریم به ما داده برای اینکه این چیزها رو داشته باشید تا خدا پسندانه زندگی کنید شما باید بیایید و خدا رو بشناسید. بیایید و به خدا وابسته بشید. اما اینجا دوباره باز تاکید میکنه او هر چیزی رو که شما نیاز دارید به شما داده. در کتاب یعقوب رسول میگه که ما نداریم چون که اگر این حقیقت داره که تمام برکات روحانی رو به ما داده او سرزمین معود کنان روحانی رو بدون قید و شرط به ما داده و ما مالک تمام اون هستیم و سند مالکیت تمام اون مال ماست پس چرا ما برکات روحانی بیشتری نداریم؟ یعقوب میگه به خاطر اینه که ما نخواستیم این راه دیگری برای گفتن چیزی که همه این آیات در کتاب یوشه بارها و بارها حدود 16 بار گفته اند اگر همه اون برکات وجود دارند و ما اونها رو درخواست نمی کنیم چرا درخواست نمی کنیم به خاطر اینه که باور نمی کنیم باید دلیلی برای عدم درخواست ما باشه یه بار داستانی در مورد واعزی شنیدم که به آسمان رفت. پتروس مقدس او رو ملاقات کرد و به او گفت که آه شبان فلانی شما هستید میخوام شما رو بگردونم. با برقی در چشمانش پتروس این شبان پیر رو به یک گشتگذار آسمانی بود. وقتی که در آسمان میگشتن شبان میگه اون جعبه بزرگ اونجا چی هستن؟ اون جعبه باریک و بلند. و پتروس میگه آه آو، یادتو اون روزی که خیلی با درماندگی برای کلیسات به نیمکت احتیاج داشتی؟ ما همه اونا رو بندی و آماده ارسال کردیم. اما تو هرگز درخواست نکردی و اونا همونجا موندن. بعد کمی جلوتر رفتند و به بسته خیلی بزرگی رسیدن، یه جعبه خیلی بزرگ. شبان بازم میپرسه اون یکی چیه؟ پتروس میگه یادت یه ارگ نیاز داشتی؟ ما اونو بسته بندی کردیم و آماده ارسال بود، اما تو اون درخواست نکردی و اون هم مونده. گردششون ادامه پیدا میکنه. شما ندارید چون درخواست نکردی. و در ضمن گردششون باز هم چیزهای دیگری میبینن و میگه نداری چون درخواست نکردی. پتروس میگه ما همه اونها رو داریم. پولوس میگه ما همه اونها رو داریم. پس چرا عملا اونها رو به دست نمیاریم؟ چون که ما ظاهرا ایمان رو درک نمی نمیکنیم. ما این پل ایمان رو که فاصله بین تمام چیزهایی رو که خدا به ما داده و قابلیت ما برای پذیرش اون چیزها مطالبه و دریافت اونا رو به هم متصل می کنه درک نمی کنی. به همین دلیل خدا کتاب یوشه رو به ما داده. در کتاب یوشا ما حدود 16 تمثیل بزرگ ایمان رو می بینیم. وقتی خدا می خواست ما در کتاب پیدایش درباره ایمان بدونیم او حدود 10 یا 12 باب به ما داد که از مردی به نام ابراهیم صحبت می کنه. ایمان اونقدر مهمه که خدا گفته شما باید ابراهیم رو بشناسی خدا به ما های زیادی داده که درباره ابراهیم صحبت میکنه، اما های مربوط به تاریخ جهان و زمین و مرد و زن و تاریخ تمدن به این اندازه نیستند. خدا دو برابر فضایی رو که به این چیزها مربوط هستن به های مربوط به ابراهیم اختصاص داده چون که ما نیاز داریم درباره ایمان بیشتر بدونیم. خدا به این موضوع هم بسنده نکرده وقتی به کتاب می رسیم به ما شانزده تمثیل بزرگ در این کتاب میده که همه اونا همون چیز رو میگن ایمان چیه و چطور کار میکنه چون ایمان کلیت هست ما همه اونو داریم ما این سرزمین روحانی کنعان رو داریم اما اونو تصرف نمیکنیم به این دلیل که ایمان رو درک نمیکنیم پولس رسول هم به ما آیه بزرگ ایمان رو میده در دوم قرنتیان نو هشت پولوس رسول کنعان رو اینطور به تصویر میکشه و خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز همواره نیازهایتان برآورده شود و برای انجام هر کاری نیکو به فراوانی داشته باشید آیا به تعداد فزونی ها در اون آیه توجه کردید خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز همواره نیازهایتان برآورده شود و برای انجام هر نیکو به فراوانی داشته باشید این آیه درباره فیض صحبت میکنه کلمه فیز در زبان یونانی به معنی عطیه الهی آمده. فیز برکت و لطف خدا هست که ما شایستش نیستیم. فیز به اشکال مختلفی میاد. فیز به شکل قدرت خدا ظاهر میشه که محرکهی برای زندگی خداشناسانه هست. پس کلمه فیز تصویر خوبی از سرزمین وعده و برکات روحانی ما هست. وقتی فیز در زندگی روحانی شما کار میکنه، وقتی که شما ایمان دارید فیز رو دریافت میکنید. کلمه یونانی فیز، کاریزما یا کاریزماتا هست. چه کلمه مهمیه. چه مفهوم مهم مهمیه. این آیه میگه گوش کنید، خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد. نمیگه یه ذره فیز سر راهتون قرار میده. خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد. در هر زمانی که از تمام چیزهایی که نیاز دارید به قدر کفایت داشته باشید تا برای انجام هر کاری نیکو به فراوانی داشته باشید تمام عطایا تمام فیض تمام چیزها همیشه برای همه ما به قدر کفایت این چیزیه که پولس میگه حالا اگه این حقیقت داره چرا ما همیشه برای انجام هر کار نیکو دنبال فراوانی نیستیم و همیشه به قدر کفایت از خدا میخوایم؟ یه روز با مردی نهار میخوردم و بهش گفتم امروز چطوری و طبق معمول همیشه به من جواب داد و گفت عالی وحشتناک؟ من از این طرز جواب دادن او خسته شده بودم ازش پرسیدم چه احساسی داری. اون روز دوشنبه بود. نه او و نه من یک شنبه خوبی نداشتیم و من احساس عالی، حرتانگیز و وحشتناکی نداشتم. از او پرسیدم اگر تو احساس عالی، حرتانگیز، خاار و وحشتناکی نداشتی چطور به سوال من جواب دادی. او گفت به تو دروغ گفتم. بهش گفتم پس واقعا بگو گوهالت چطوره؟ بعد شروع کردیم صادقانه با هم صحبت کردن. آیا تا حالا ای داشتید که حس کردید همه برکات روحانیتون رو توی اون هفته تصرف نکردی؟ اگر این حقیقت داره که خدا قادر هر نعمت رو برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز همواره نیازهایتان برآورده شود و برای انجام هر کاری نیکو به فراوانی داشته باشید، پس چرا ما باید چنین هفته‌ای داشته باشیم؟ جواب های زیادی برای این سوال هست. یکی از اونهایی که شنیدم میخوام با شما در میون بذارم. این مرد جوان ثروتمند میخواست که تعطیلات تابستونش رو در جزیره برمودا بگذرونه و ماشین پر سرعت جدیدش رو قبل از خودش به اونجا فرستاد. اما وقتی به برمودا رسید فهمید که حد اکثر سرعت مجاز در اونجا سی کیلومتر در ساعت هست و وحشت کرد اونا اونجا از این موتورسیکلت‌های کوچک استفاده می‌کردند. او روزها پشت سر هم توی این ماشین با موتور قدرتمندش پشت این مطور سیکلت ها با رانندگان پیر منتظر میمود خب یه روز دیگه تاقتش تموم شد وقتی پشت یک پیرمرد بود او به پدال گاز فشار داد و از پیرمرد سبقت گرفت و با سرعت 45 رد شد و این پیرمرد با موتورش پا به پای او میومد در واکنش او سرعتش رو به پنجاه پنج رسود و پیرمرد هم پا به پای او میومد او سرعتش رو تا شست رسوند و پیرمرد هم هنوز پا به پای او میومد. اما بعد فهمید که داره کار خطرناکی میکنه و پاش رو از روی پدال گاز برداشت و به ترمز فشار داد از جاده کنار کشید و پیرمرد هم درست پشت سر او توقف کرد او پیاده شد و نزد مرد رفت که به نظر می رسید مثل یه تیک که کاغذ سفید شده بود بهش گفت پیرمرد ببینم چه موتوری روی اون موتورسیکلتت داری مرد گفت پسرم این موتور نیست گلگیر منو کمر من به سپر تو گیر کرده بود؟ خب خیلیا که توی زندگی مسیحیشون قصد دارن مسیح رو پیروی کنن، حیجان زده و نامعقول هستن به این دلیل که کمربند روحانیشون به سپر کسی گیر کرده که قدرتمنده؟ فکر میکنم این یک جواب برای اون سواله. اگه خدا قادره که تمام این فیض رو به فراوانی به ما بده، پس چرا ما قدرت روحانی زیادی نداریم؟ شاید ما توسط کسی که نیروی روحانی داره کشیده بشیم اما خودمون شخصا قدرت محرکه ای نداریم شاید ما کسی رو میبینیم که واقعا اتیه داره و شاید ما از اونها پیروی میکنیم و سعی میکنیم با اتیه روح القدس اونها زندگی کنیم شاید به این دلیل که ما هیجان زده و بی ثبات هستیم و بالا و پایین میشیم روشن و خاموش میشیم درست مثل اون کسی که کمربندش به سپر اون دوج کرده بود یه روز از یه راهبه کاتولیک سوال کردم نظرت در مورد جنبش کاریزماتیک در کلیساهای کاتولیک چیه؟ او گفت که وقتی که تازه وارد خدمت شده بود، از اسقف در مورد همین سوال کرده بود. چون اون مسئله او رو خیلی گیج کرده بود. از اسقف پرسیده بود پدر آیا ها به آسمان خواهند رفت؟ و اسقف پیر پوکی به پیپش زده بود و گفته بود اگر خیلی زیاد روی نکنن داره. وقتی که ما به عطاها یا کاریزما فکر می‌کنیم، به خیلی چیزها فکر میکنیم کتاب یوشه علنا درباره عطایا هست در واقع موضوع کلی اون همینه در کتاب یوشه یک سرزمین جغرافیایی واقعی هست اون سرزمین کنان هست اونها باید وارد سرزمین کنان بشن و باید هر بار یکی از شهرهای اون سرزمین رو کنند. هر بار بر یک قوم قلبه کنند. اما کاربرد حقیقی کتاب یوشه که مورد نظر ماست در واقع به یک سرزمین جغرافیایی مربوط نمیشه. اون در مورد عطیه هاست. اون در مورد فیضه. آیا ایمان دارید که خدا قادر هر فیز رو به فراوانی بر شما بریزه؟ نه تنها بر بیلی و یا شبان فلانی، بلکه بر شما، تا اینکه شما همیشه و نگاهی اوقات، بلکه همیشه به قدر کفایت برای هر کاری که شما رو به اون فرا خونده در اون فیض بیابید، تا شما نه لنگ لنگان، بلکه به فراوانی، برای انجام اراده او که شما رو به اون فرا داشته باشی سرزمین کنعان هدف از نجات قوم اسرائیل رو برای ما به تصویر میکشه نجات اونها از مصر نجات ما از ایمانی ناشی میشه که باور داریم عیسی مسیح تنها پسر خداست او تنها راه حل خداست و تنها ناجی خداست شما بر این ایمان میارید و نجاتتون میده او شما رو از مصر روحانیتون نجات میده حالا هدف از نجات چیه کنان روحانی شما هرچی که باشه هدف همونه پولس رسول به ما میگه که خدا ما رو با فیض توسط ایمان نجات داد. به گفته پولوس این نجات از خود ما نبود اون هدیه ای از خدا بود ما با اعمال نیکو نجات نیافتیم بلکه پولس در افسوسیان دو ده میگه زیرا ساخته دست خداییم و در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم. کارهایی که خدا از پیش محیا کرد تا در اونها گام برداریم این هدف نجات ما در این زندگیه خدا کارهای خاصی داره که میخواد هر کدوم از ما انجام بدیم او میخواد که در اونها گام برداریم او میخواد که ما خدمات خاصی رو تجربه کنیم خدا فقط ما رو نجات نمیده که به آسمون ببره نجات چیزی برتر از در امان بودن از آتشه یا فرار از آتش و یا یک بلیت یک یکسره به آسمان اینها نجات هستن این چیز مهمیه. اما نجات چیزی مهمتر از اونه. یک هدیه‌ای هم در هدف نجاتمون نهفته است این چیزیه که سرزمین کنان به تصویر میکشه دلیلی که ما این فیض رو نداریم اینه که نمیدونیم چطور اون رو به کار بگیریم چطور اون رو بپذیریم چطور از اون قدردانی کنیم ما دقیقا نمیدونیم ایمان چیه این یکی از دلایلی که خدا کتاب یوشع رو به ما داده تا نشون بده که با ایمان هست که اطاعت میکنیم و با اطاعت هست که داراییهای روحانیمون رو تصادف می‌کنیم. دوستان متشکریم که ضمن مطالعه حقایقی از کلام خدا با ما همراه بودید. شکی نیست که شما دوستان و آشنایانی دارین که هنوز در اسارت هستن و این خبر خوش رو نشنیدن که اونها هم میتونن از مصر روحانیشون آزاد بشن. آیا این هفته این خبر خوش رو با اونها درمیون خواهین گذاشت؟ اما همونطور که باید هدیه فیض رو با ایمان دریافت کنین، حالا لازمی که وعده های او در سرزمین وعده او رو هم بپذیرید. دایما ما اینه که جسارت داشته باشید که موتی او باشین و او رو پیروی کنین تا شما را به سرزمین برکات روحانیتون هدایت کنه. باشد که خداوند به شما جسارت بدهد تا سرزمین کنانتون رو فت کنید.